أعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان اللعیم الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورت و علم نشره سورت و علم نشره سورت و شرح درست شد؟ هر دوش بیان شد. سورة و شرح سورت و علم نشته این سوره سوره مکیست و هیه سمانی آیات بل اجماع و این هشت آیه هست و هیه سمانی آیات بل اجماع به اجماع همه مفسرین هشت آیه است به اجماع اهل اسلام هشت تا است اختلاف در تعداد آیات و اختلاف در مکی بودنش بگید نیست یعنی هر دو شمشایی فضلها فضیلت این سوره ابی کعبن ابی بن کعب ان از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ابن از رسول گرامی اسلام نقل فرموده قال من قرعها او اوتی منل عجره کمن لقی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم مقتمن ففر رجع انه مقتمن تمن درست شد؟ من قرعه ها هر که تلاوت کند این سوره را. اعتید اتیه می شود منل عجر از عجر الهی کمن عطا میشه همانند کسی که آه؟ لقی محمدن از صحابی پیامبر اسلام بوده و با پیامبر اسلام ملاقات داشته صلی الله علیه و علیه و سلم لقی محمدن مقتمن مقتمن حال است از برای محمد برخورد کرده رو در رو شده با پیامبر اسلام در حالی که پیامبر اسلام غمگین بوده مقتمن ففر رجه بعد هم بگو لقیه با پیامبر مقتمن ففر رجه بعد بار غم رو از دل پیانبر برداشته و پیامبر رو بگو بهش شادی داده دل پیانبر رو باز کرده پس بنابراین میگه اگر کسی این رو بخونه اینه اینه که قم از دل پیانبر برداشته توی کشاف این حدیث رو به این شکل نقل کرده میگه عن نبی یعنی چی؟ از پیانبر گرامی اسلام نقل شد من قرع علم نشره من قرع علم نشره کسی که علم نشره را تلاوت کند فکعن نما فک نما پس گویا جانی انی پیانبر میگه فکه انما یعنی چی؟ پس گویا به پیش من آمده و انا مقتمان و حالان که من قمگیم بودم پیش من آمده در حالی که من غمگین بودم ففر عنی پس قم از دل من بگیید برداشته است ففر شد یا نشد پس از نبی گرامی اسلام روایت شده من قرع علم نشره انما و کعن ما جاعنی و انا موقتمن ففر رجب بگو. اونجا راویش بود نبی نقل کرده دیگه راویش رو نقل نکرد هر دو هر دو یکیه ولی می‌خوام بگم ساختار لفظی دو تا عبارت با هم بگید فرق دارد من قرعها ها من این الاجره کمن لقی محمدن الله الله علیه و سلم موقتن من ففر رجعه تمام شد و روا اصحابنا اند و زها و علم نشرح سورتان واحدن اصحاب ما نقل کردن که این دو سوره در حکمه بگید یک سور است لتعلق اهداهما بل اخرى لتعلق اهداهما بگید بل مثل سوره فیل و سوره لایلاف قرش که حتی فجعلهم که معکول که در آخر سوره فیل هست لئیلاف قرش رو بعضی ها جار و مجرور رو متعلق به اون جعل کنن یعنی درست شد فجعل هم که یعنی قرار داد عبرهو و یارانش رو مثل کاه جویده شده توسط ایوان فجعل هم که به خاطر چی بگید <تصفيق> اوریشن <آه>؟ ها علت <تصفيق> وا می خوام نمیخوام اینا یعنی می خوام میگم اون دو تا سوره با هم در حکم بگید یک سوره حتی در نماز هم اگر خوانده شود اون دو رو با هم می خوانند اینم هم همینطور سوره واحده لتعلقه لتعلقه یه لحظه هما بل بالاخرا ولم يفسلو بینهما بسم الله الرحمن الرحیم و فاصله نی بین این دو سوره با بسم الله الرحمن رحیم که البته الان ما می بینیم هست و بسم الله الرحمن این رواعصها بنا یک مقدار اینجا جایه حرف دارد که همه از خواب چنین و او بینه هما فرکعت فر الواحدت فرفریزه این درسته حکم فقریشون هم همینه که دوتا رو در یک رکعت جایه بگید سوره میخوانند یعنی به جای سوره نانزلنا یا سوره قلوب الله و این دو را میخوانند مثل سوره فیل و ایلاف قرش و کزالکل قولو فی سورت علم ترکیفه و ایلافه بگید قرشه و سیاق یدن لعلا زالک میگیم حالا آیا اینکه ما این دو سوره رو در حکم یک سوره بدانیم در حکم یک سوره و بگو در یک رکعت نماز هر دو را بخونیم این که از خواب انجام دادهاند آیا کاری از نظر ساختار و محتوا سواب میگه بله وسیاق یعنی وسیاق و سبب و محتوای این سوره ها يدل علا زالک دلالت بر همین میکند که این دو سوره یک سوره باشد آن دو سوره هم بگید لعنهو قال میگه چطور میگه لعنهو قال زیرا فرموده علم یجد که یتیمن فعاوا الى آخرها علم یجد که یتیمن فعاوا الى آخرها تا آخر سوره ثم قال بسم الله الرحمن الرحیم علم نشده لکه یعنی اون سوره امتنان منتگذاری بر پیامبر به الطاف خودش خداوند این سوره هم بگید مشابره درست شد؟ سوره قبل، سوره وزه ها شما در اونجا میبینید که خداوند امتنان نعمات خودش رو بر پیامبر میکنه در این سوره هم داره بگو به همون شکل بیان میکنه علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن ساختار بگید مثل هم است فهمل یتیم فلا تقهر و همم سایلا فلا تنهر و هم با نعمت رب بکر فهدست اینها نتیجه اون علم یجد که یتیمان آن چون اون سه شکل بود یجد که یتیمن فآوا. وجده که زالن فهدا و وجده که آیلن فقیر یافت و قنیت کرد حالا ف بنابراین وقتی چنون بودی و چنین کردیم تو را پس تو هم ام ملیتی هر و ام سایل فلا تنهر و هیچ وقتم بگو نعمت پروردگارت رو فراموش نکن این نعمت پروردگار تو را از کجا به کجا رسان و سر بگو ذهن و زبان خودت داشته بشه. اینجا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم از نظر ترکیبی هم که ترکیب کنیم می بینید که این دو تا سوره می میشه با هم دیگه مقایسه شون کنید نشره لکه صدرک و وزعنا انکه وزرک علزی انقذ زهرک و رفعنا لکه ذکرک فا اینم علا عصر یسرا اینم علا عصر فا ازا فرق تفن سب و فرق علم نشته همزه همزه استفهامه به معنای نفیه به معنای نفیه لم هم نفیه نفیه در نف میشه چی؟ بگید اثبات یه در نف میشه اثبات. نشره لکه صدرک لکه جار و مجرور متعلق به نشته صدرک مفهول مزاف مزافونی مزاف لک مفهول علم نشره یعنی قد شرحنا چون اگر فرموده بود شرحنا لکه صدرک تاکید دوش بگو نبود تو علم نشره تاکید هست نفیه در نف تاکیدش بیشتر از اثباته لذا تو ترجمه که ما برگردان میکنیم به معادل میگیم قد شرحنا قد شرحنا یعنی به یقین ما شرح دادیم وسعت دادیم برای تو سینه اطرا سینه تو را گشاده قرار دادیم حضرت موسی چنین چیزی رو وقتی خطورت امر رفتن به پیش فرعون رو دید گفت ربش رحلی صدری و یسرلی امری خداوند هم بهش داد اما اینجا خداوند خطورت امر رسالت پیامبر را می داند و این شرح صدر را به پیامبر خود می داد. میگه علم نشرم ما شهر ندادی ما تو را حوصلمند بگید نساختی تو رو توانمند نسبت به این انسانها که اینقدر لجوجند قرار ندادیم م? ولی باز با اون حال میگه این نمحل عصره یعنی خیلی سخته درست نیست؟ یعنی با این سختی هایی که هست و این توانی که ما به تو دادیم با سخته ولی یوسرا این زحمت به نتیجه میرسه نتیجهش نتیجه خوبیست نتیجهش رضایت الهیست نتیجهش رساندن رسالت خداست انمه علا عصره یسرا بنابراین از پانش این فعضا فرخته فنسب هرگاه دیدی که به قول خودمون از امری و تبلیغی و رساندن امری فارغ شدی فنسب به کار دیگری بگو مشغول شد دیگری را از پامنشین و الارب بکفرقم و این مسیر رو فقط این مسیر است که تو رو به خدا می نسون. مسیر است که مسیر اطاعت است و الارب بکفرقم حالا علم نشره لکه صدرک و وزعنا آه. وزعنا یعنی پایین آوردیم وزعنا انکه وزرک انکه متعلق است به بگید وزعنا. وزعنا وزرکه مفوش چه دلیلیه که الم نشره به معنای قد شرحناست؟ همین آیه و وزعنا. اونجا هم علم یجد که یتیمن فعاوا و وجدکه الان اینجا و زعنا فعل بگو مازیه مثبت فعل مازیه بگید مثبت عطف شده به جای چی ها به جای علم نشره اگر اون انشاء بود نمیشد خبر رو به او بگید اعرب کن اونم خبری است در ظاهرش انشاست اون اونم جملهش یعنی قد شرهنا خبر داره میده محتمل صدقا بگید کذبه، ظاهرش انشاست نگرفتی چی ارز کردیم یا نه؟ یعنی قد شرحنا و وزعنا و وزعنا انکه وزرک بعد اون وزر رو یه صفت براش میره وزر یعنی بار سنگین اصلا وزیر از این کلمه است چون بار سنگین بلند میکنه. اصلا به گناه هم میگن وزر لا تذرو وازرتون وزر اخرى چون بار باره بگید سنگین است درست شد؟ پس بنابراین این لذی ان زهرک آن لذی زهرک غذا زهرکه آن برای آن لذی برای وزر آن برای وزر زهرک ان فعل زمیر فاعل که به وزر میخوره زهرک هم مفعول سجع آیه رو می بینید دیگه سدرک وزرک زهرک ها کاف بهترین نوع سج ام هست بهترین نوع سجع اینه که فقراتش با هم مساوی باشه تفساوت فقره درست شد تفصالت فقراتش با هم مساوی ز. زهره که بار سنگین بار سنگین اگر شما بگذارید بر روی مثلا فرض روی کرسی باشه یا یک چرخ چوبی باشه مثل کرسی مانندی که چرخ داره اگر شما یه بار سنگین روی بگذارید احساس میکنید قشش و قش این بندهای این کرسی داره چیه؟ صدا میده نمیش ها ولی تمام بگو بند بند اون داره بگید به صدا در میاد تق تق میکنه ها تعبیر به اون کرده الضی انغز زهرک یعنی چی انگار بار سنگینی روی دوششه که این بار سنگین تمام ستون فقرات و مفاصل او را بگید به صدا در کرده یعنی اینقدر اون سنگینی بار رو نشون رفته چی میگم یا نه انقزه یعنی زیر اون بار کمرتو داشت بگید صدا میداد کمرتو بگو به زحمت افتاده بود معنای مجازیه ولی بار بار معنویه باره بگید رسالت تشبیه شده به امر حسی که بار سنگینی انسان روی دوشش بذاره و این ستون فقراتش بگید صدا بگید. انگذر زهرک اما نگاه کن بعد و رفعنا لکه ذکرک آه. این کارا رو کردیم بار سنگین رو دوش این زحمت مزدم داره مزدش چیه؟ و رفعنا لکه بگید ذکرک و به نفع تو لکه آه. ذکر تو رو بالا بردیم تو در نگفته در کجا در دنیا و آخرت تو بالاترینی و رفعنا لک ذکر چرا؟ چرا؟ چون فرعن معل اسره یسرا زیرا همیشه با کار سخت مزد هست یسرن ها زیرا با این کار سختی که تو به دوش کشیدی یسرن آسایش هست آه. مزدش یسره بعد می ان این نمحل و اسره کرده این کار سنگین مزد داره این کار سنگین مزد داره زیرا این کار سنگین بدون مزد بگید نمیشه این کار سنگین باید مزد داشته باشه جمله دوم تاکید لفظی برای جمله اول که اینو جا بندازه که این کار سنگین بدون مست تگه میشه این کار سنگین بدون مست نیست حالا اونو میگم اونو بعد میرسیم اونو میرسیم اونا چون رضایت الهی هست باهاش از همون لحظه‌ای که شما داری زحمت می‌کشی این زحمت شیرینه چون محبوب تو معشوق تو داره تو رو می‌بینه اظهار رضایت میکنه به تو می‌خنده درسته که تو داری زحمت می‌کشی همون لحظات زحمت رضایت او بگین این کار رو برات آسون میکنه. ان معل اسری بعضی گفتن این اینجا به معنی بعده ولی معه اصلا تو ادبیات به معنای بعد بگید نمیاد یه به قول خودمون ترجمه من در آوردی کرد این نمعه الاسره گفته یعنی این نمعه الاسره فواره موقعی که به انتها برسه واجبوب میشه مسیر راحت میشه شما قله رو میری بالا به نوک قله که میرسی بعد بگید برگشت سر این اینها اما مع زرف است و معنای خودش داره و در ادبیات به معنای بعد نمیاد بعد میگه حالا که قراره که مزد خوب بدیم فعضا فرخته بگو فنسا میگه این فاها رو میفهمید دیگه نه؟ فعضا فرخته یعنی چی؟ هر موقعی که پنابرین هر موقعی که فارغ شدی ازا میگه چون بیانبر چنین میگه یه مستقبل محققال بود ازا فرخته فنسا آ کاری که رضایت خدا توشه فارغ شدی ازش فنسم مشغول شد به یه دیگه فرخته ف بیکار نشین لضا دیدید معمنی میگه چی؟ ها ال یا عملون از عملون یعنی چی؟ یعنی مدام انجام میدن از سالهات یعنی بگو هر کار خوبی، معم مثل تاجریه که همش دنبال سوده جنس خوب ببینه قیمت خوب داشته باشه رهاش نمیکنه تاجر لذا فعضا فرخته فنسد و اله و اله ربکه بگید فرقه این اله ربک مقدم شده هم مفید حسره هم سج و درست کرده چون سج ببینید توی این نمال اصر یسرا این نمال یسرا با راست سج اولی با کاف بود چهار تا با هم مساوی بودن در فقرات بعد دوتا سج را دارد که با هم مساویه در فقراتن بعد بگید دوتا سجه با دارد که این دوتا هم با هم بگید مساویهن فعیضا فرق تفند سب و الارب بکفن. اصلا یه آیه قابلیت غیر از هشت آیه بودن رو نداره این که گفته به اجماعه یعنی اصلا امکان اینکه شما بتوانید دو تا آیش رو به هم بچسبانید یا در جای غیر از موارد سجعش وقف کنید وجود ندارد یعنی باید هشت آیه باشه هیچ کارش بگیر نمیشه دو سه تا نکته تو اینجا هست که اون دوکاتش نکات حساسیه بعضیهاش رو ها؟ ما توی عبارات داریم بعضی هاش رو به قول معروف توی عبارت نیست من یک مبحثش رو که میخوام براتون بگم تو این بحث لکست لکم و بحث انکست علم نشته لکه صدرک و وزعنا انکه وزرک و رفعنا لکه ذکرک این لکه و انکه ظاهرا بگید زائد به نظر میلیسه اگر میگفت علم نشره صدرک یعنی چی؟ آه؟ یعنی ما صدر تو را بگید گشودی اگه بگید اونجا توی چیز هم مشخص میشه توی بس ربشره لی صدری و یسر لی امری خب میتونست بگید ربشره صدری و یسر امری اون لی و لکه اینجا چه میکنه؟ چ جرس کردم یا نه؟ لی ولکه اینجا چه است؟ هست نگرفتید من چی گفتم این باید یه جایگاهی داشته باشه این چه میکنه یک عبارتی رو براتون بگم بنمیسید بنمیسید تو. حیفم میاد که این عبارت نداشته باشید تو. فی زیادت لکه ول في فی زیادت لکه و این کان المعنا يستقل و بدونی و این کان المعنا يستقل و بدونهی ما یعنی چی؟ معنا مستقل است می توانید نه خوندید میگن که اسم اونیه که معنای مستقل داره و زمان نداره یعنی خودش معنا داره درست شد؟ میگه فایده در اضافه شدن لکه و همچنین انکه که شما میدیدید و این کانال معنا یستقل رو بدونه معنا بدونه اینکه که این لکه بیاد بگید کامله همین معنا این لکه چیزی اضافه معنا نکرده است نشود یه شد لکه چیزی اضافه هیا مافی هیا فائدتو هیا هیا مافی طریقتل ابحامه ولی ایزاه هیا مافی طریقتل ابحامه بل ایزا یه قاعده ای دارم ها میگن ال ابهام ثم ایزا ها یه قاعده ای دارم میگن ذکر و شی مبهمن ثم مفصلا او قا و عشد فمنفوس یعنی چی قاعده اگر یک چیزی رو شما مبهم ذکر کنید بعد مفصل توضیحش بدید مفصلش کنید این اوقع و عشد و نفوس نفوس یعنی نفس مخاطبین. خوب جا میگیره تو دل مخاطب مخاطب رو کاملا بگید حواسش رو جمع میکنه خب این لی و لکه همین کارو میکنه اول کلام رو مبهم میکنه بعد بگید توضیحش بده هیا ما فی طریقت الابهام ولی ایزا نهو میگیم توضیح بده نهو لما قال علم نشره لک جا. ببین خلاصه وقتی میگه علم نشره لك ها تا جا. وقتی سم لما قال علم نشره لکه فهمن همینجا همین آ یک ثانیه اصلا یک دهم همه ثانیه فهمن ان نسمه تا اینجایی که میگه علم نشره لکه فهمیده میشه یه مشروهی هست چون فعل علم نشره بدون مشروه بگید نمیشه مثلا شما میگید علم تاکل نخوردی؟ خب معلومه که بگو یه خوردنی بگید بوده فعل بدون مفعول فعل متعدی واقع نمیشه همینجا فهمیده میشه فاهمه انه سمه مشروه هن سمه سه یعنی انه هناکه مشروه هن میشه یه چیزی مشروعی هست همینجا ذهن شنونده بگید ها؟ همین همینجا ذهنش رونده بگید مشغول میشه وقتی میگه علم نشره لکه اگه بگه علم نش لکه نیاد آه اون نیم. اما به مخاطب که میگه علم نشره لکه وسعت ندادم برا تو تا میگی برا تو اون ذهنش بگید خیلی متمرکز میشه که چه چیزی از من بگید مشروع کردشت وسعت در چی واقع شده؟ نگرفتی چی شد؟ این لکه که شنیده میشه توسط مخاطب بگو شوق ایجاد میکنه برای اینکه مابد رو بگو خوب گوش کنه و توی موارد امتنان هم روی اون مورد امتنان خیلی تأکید میشه اونو جا میندازه مثل این میمونه یه موقع برمیگرده میگه من وام شما رو امضا کردم من وام شما را امضا کردم این بیچه اما اگه بگه امضا کردم برا تو طرفه توجه جلب میشه چی رو امضا کردم میگه وام تو این جمله دومی خیلی ذهن شنونده رو به خودش بگید همه جوش رو میکنه علم نشته لذا فهمه انه سمه مشروهن سمه قاله صدرک بعد برمیگرده بعد از لکه میگه صدرکه سمه قاله صدرک ها؟ پس اول اب همه بگید اوزه با صدرکه فعوزه ماکانه مبهمن فعوزه ماکانه بگید مبهمن و کازال که قول لکه ذکرک و انک وزرک و کازال که قول لکه ذکرک و بگو انکه وزرک این سه جایی که خدا سه تا کار کرده ها این سه جایی که خدا سه تا لطف کرده به پیغمبر یکی صدرش رو مشروع کرده یکی وزرش رو موضوع کرده انداخته و یکی هم ذکرش رو مرفوع کرده بالا برده این سه کار رو برای پیغمبر کرده دیگه در هر جا لکه و انکه اول گفته بعد اون بگو کار رو که اون مورد امتنان با مبهم شدن و سپس موزه شدن واضح شدن خوب تو ذهن بگید نشد خب بعد بنویسید بعد گفتم که این استفهام چنون استفهامیه؟ استفهامه بگید انکاریه یعنی انکاریه نگیم به منای نفیه فعفاد الاسباد یعنی جمله جمله مثبت میشه. آن نه بعد ایجابش ایجابش. یعنی قد شرحنا باعث میشه که و زعنا بهش بگید عطف بشه. و همچنین بقیه. یعنی در واقع وگرنه عطف بگید جمله خبری و شاییه درست. خب علم نشره لکه صدرک و وزعنا انکه وزرک ان انغز زهرک و رفعنا لکه ذکرک این علزی هم که آورد خاصش اون وزره رو چکارش کنه؟ صفت آورده اینجا که وزری که بگو بوده خطورتشو نشون بده آخه یه موقع بار از دوش این نفر بر این نوع برداشتن بار تشریفاتیه دیدید یه نفر مثلا کیف کوچیکی دستشه؟ ها؟ شما میاد میگید آقا ببخشید یکیفتونو بدید به ما میگیرید و همه سه خیلی کسانه دیگه این در واقع به او احترام فقط گذاشتید ولی یک زمان نه بار بار چیه؟ بگید سیقل داره یعنی هم احترام گذاشتید و هم در واقع بگو او را کمک کردید مسیر رو براش آسان این آیات نشون میده که واقعا مسیر حرکت پیغمبر بسیار مسیر بگید سختی بوده مسیر ساده‌ای نبوده ممنون ممنون ممنون نا عصار اون هنوز معریزیه ولمون نکرده خب نگاه کنید حالا من معنا رو اول میخونم چون بحث لغت برمیگردم میخونمش ولی معنا رو اول بخونم که یه مقداری ما باش کار داریم المعنا ثم عتم سبحانهو تعداد عتم سبحانهو تعداد نعمهی هي الا تعداد یعنی چی؟ نه تعداد تعداد همون تعداد فارسیه چون تو فارسی اماله میکنه این مستر مستر توی عربی وزن تفعال تو عربی این مستر زیاده مثل تکرار تعداد ها اما همشون مفتو هستند همشون مفتو الا یه دونش توی عالم عربی یه دونه هست که مکسوره اونم تبیانه تبیاننده کله که تو قرآن هم هست تبیان نه تبیان نگفتن تبیان میگفتن تکراره تعداد مشخص شده نه اما بقیه همه بگو مفتوئن مال ما به خاطر اماله مثل لیلا رو میگیم چی لیلا, لیلا. اماله که میکنیم به کسر میکنیم این میگیم تعداد ولی تعداده سمعتم سبحانهو تعداد نعمیه علا نبیه یعنی تعداد یعنی چی؟ از عدد است دیگه شموردن الازی جمع امالن و عدده شماره کردن نعماتش رو داره بر پیغمبرش تمام میکنه چرا میگه تمام میکنه چون تو سوره قبلی هم گفت ولم یجد که یتیمن فعاوا اون فعاوا هم نعمت بود درست شد نه؟ وجده که آئلن فقنا، اقنا هم نعمت بود نعمت ها رو اونجا شمرد اینجا داره تمام میکنه دیگه نعمت رو گویا اونها نعمت چی بودن؟ علم یجد که من و وجده که زالن فهدا و وجده که نعمتهایی بودن که با امر دنیاوی بیشتر سر و کار داشتن اما اینجا بگید نعمت معنویه اون انگار نعمت قبل از رسالت این نعمت بگید بعد از رسالت. نعمات خودش رو داره بر پیغمبر به حساب میاره علا نبیهی صل الله علی و علی و سلام فقال علم نشرح لکه صدرک روا سعید ابن جبیرن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لقد سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله گفتم من یه خواسته ای از خدا خواستم ولی بعد دوست داشتم که کاش بگید نخواسته بودم وددت عنی لم أسأله دوست داشتم که نگفته بودم چی گفتم ای ربه بعد میگه رسول خدا توضیح داد گفتم ای ربه ای یعنی چی حرف نداست یا ربه درست شد ای ربه انه قد کان انبیاء اون قبلی میگه گفتم خدایا انبیایی بودن قبل از من من هم من سخرت له الريح بعضیاشون بگو باد رو براشون تسخیر کردی مثل سلیمان و من هم منکان یوهی الموتا بعضی مردگان را بگید زنده می و همینطور بقیه بعضیا ها اسا داشتن می انداختن ها, ها تعبیر خواب داشتن خب قاله فقاله قاله یعنی پیغمبر فقاله یعنی خدا میگه وقتی من گفتم خداوند تعالی فرمود علم اجد که یتیمن فآوه ای تو من تو رو یتیم نیافتم بعد آوه تو که به تو جا دادم، معوا دادم، پناه دادم؟ قال قل قال قاله تو بلا میگه پیغمبر گفت من گفتم بله چرا؟ این بلا در مقابل نعفی میاد و مثبت میشه مشخص شد؟ مثل این که میگم پولتو ندادم میگی چرا این بلا معادل چرای فارسی ماست متعشدی؟ یعنی دادی بلا قال علم اجد که زالن فهده ای تو آیا تو را زال نیافتم فهده تو که پس هدایتت کردم اینجا زال آیا به معنای گمراهه که قطعاً بگید نیست درست شد میگه قال قلت و بلا اینو تو اون سوره انشالله موارد زال خواهیم گفت ولی به معنای گمراه نیست قال قلت بلا ای رب قال علم اشره لکه صدرک و وزعت و انکه وزرک قال قلت و بلا ای رب میگه گفتم چرا ول معنا علم تفتر فهمیدید میگه واسه چی کاش ازش نگفته بودم آه میگه من یه چیزی از خدا خواستم کاش نخواسته بودم گردم خدای تو به همه هم یه چیزی دادی میگه خدا وقتی نعماتشو بر من شمرت دیدم بر من بگی بیشتر از اونها داده من خودم خجالت کشتم اونه این طبقه این روایت ول معنا علم نفته لکه صدرک شرحو داره معنام میکنه یعنی فت باز کردن و نوست قلبک به و ولعر و نوسته و وسعت دادیم دل تو رو قلب تو رو به نبوت وله علم. یعنی این علم تو و این نبوت تو قابلیت بگو اینکه در دل تو جایگیرد را نداشت ما دل تو رو ظرفش رو باز کردیم تا بگو در دل تو نشد یا شد من احساس نمی کنمم باشه که یعنی ما نبوت منظور اینه که بگو ها همون شرح صدری که در موسا بود منظور اینه که ما اگر به تو رسالت سنگین دادیم بگو اون اسباب لازم او رو هم از الطاف خودمون دادیم ولی با اونها کار خیلی کاره سختیه و بدان که با این سختی رضایت ما هست و اون یسر است. آسان است حالا به نبافت ولیه حتی به عداء رسالت جوری شد که الان با این کاری که ما کردیم تو میتونی به قیام کردی یعنی عداء رسالت رو انجام دادی و صبر تعلن مکاره و احتمال لعظام احتمال یعنی تحمل و صبر کردی بر سختی های این کار و احتمال لعظام وطمعنن تعلن ایمان و آرامش گرفتی در کنار ایمان به خدا و ایمان به قرآن و اینها یعنی قلبت علا به ذکر الله تطمعن فلم تزق بهی زرعن تزق بهی زرعن یعنی نسبت به این ایمان زیغ زرع نداشتی یعنی دستت بسته بگو زاق از ذرهن کنایه است. یعنی فلا دستش بسته است. یعنی کاری بگه هم کنم حوصلش تنگه یعنی دستت باز بود میتونستی بگو از پسش بر و لم تزق بهی ذره و ها تشریح و لحم حالا داره مخواد شرحو بگه که شرح گفتیم شرح یعنی چی؟ بگید گسعت داد میگه کلمه تشریح هست همینه علم تشریح هستش که میان گوشت رو ها میگه اینم هم همینه و منو تشریح و لح شره باب تفعیل که میره میشه چی چی بگید مبالغه یعنی بسیار یعنی اون لابلای تمام رگ و پی ها رو چیه که باز میکنه میگن شرر القصاب ال لحم ها گوشت رو تشریح کرد یعنی کاملا تمام اون چربی و دنبهش رو از هم و منهو تشریحو لهم لانه فتحوهو به ترقیقه زیرا باز کردن لحم است با ورق ورق کردنش با لایه لایه کردنش ترقیقه فشراها سبحانهو صدرهو پس وسعت داد خدای سبحان سینه پیامبر رو به ان ملعهو علمن و حکمتن وسعت داد به چی؟ به این که سینه پیامبر رو وسعت داد، باز کرد، به اینکه که پرش بکنه از علم و بگید حکمت. سینه او رو دریایی از علم و حکمت قرار داد. و رزق او حفظ قرآن. و به پیامبر حفظ قرآن رو دادی از معجزات پیامبر است. که پیامبر کل قرآن خودش را بگید نفس بود الان شما یه آقای 50 سال هشتاد سال کار فقه و اصول میکنه کار درس خارج میکنه یه رساله عملیه نوشته 100 هزار بار هم ازش سوال کردن گاهی اوقات میری پیشش میگه آقای مسئله میگه باید ببینم تو رساله بگید به چه نتیجه رسید اما باز میکنه بگو اما پیامبر گرامی اسلام در طول دوران 80 تا جنگ کرد در مدینه سه سال تو و به بود این همه مشکلات و هیچ خطی ننوشت و هیچ کتابی نخوند اما قرآن خود رو بگید حفظ بود هیچ کسی رو پیدا نمیکنید که آمده باشه گفته باشه من رفتم از پیغمبر این رو سوال کنم این آیه رو گفت و اینجاشو اینجوری گفت اون یکی بگه اونطوری گفت اون یکی بگه این رو در اون سوره گفت اینو بگه در این سوره گفت جابجا کند ها همون لوجه دو فیه اختلافن کسی را هیچی توش پیدا نمی خوبیم خب اجازه دیگه و رزقه او حفظ قرآن و شرائع اسلام شریعت اسلام در نزد پیغمبر یه شریعت و من علیه به صبر و احتمال و لطف کرد به پیغمبر به این که به پیغمبر صبر داد و تحمل تمام شد تا اینجا میگه من تفسیر مد نظرمو گفتم حالا میگه وقیله ان هو الله علیه و آله سلم کان قد زاغ صدره به معادات الجن ولانس ایاهو و مناسبتهم له و مناسبتهم له میگه گفته شده که کان قدزاق زاغ پیامبر حوصلش سر اومد به معادات الجن ولانس به دشمنی کردن جن و ایاهو با او معادات یعنی دشمنی کردن جن و با او و مناسبت هم مناسبت یعنی بگید ناسبی از همین کردم است و ناسزاگویی های اونها به پیانبر مناسبت هم این لحب ناملام تغییت یعنی یا، از دشمنی و کلمات به قول معروف ناسزای اونها پیغمبر داریم تو قرآن دیدید؟ قد نعلم و انکه یزیغ و صدرو که ما یهونو میگه اینطوری بود خب من منال آیات متسع بهی صدرو پس آمد به پیغمبر رسید منل آیات از آیات الهی ما فایل عطا هست. آنچه که اتسع بهی صدرو آیات الهی آمد سینه به آنبر رو بگید وسعت داد به کل ما حمله الله ایاه و عمرهو به آیات اومد سینه پیامبر رو جوری گسترش داد به آنچه که خدا بهش تحمیل کرده و عمره به او کرده یعنی دیگه عوامر الهی و دستورات الهی رو به کل ما حملهو آنچه که خدا تحمیل کرده به پیامبر و امر به و امر کرده ما آیات باعث شد که پیامبر حوصله این رو پیدا کرد و ذالک من اعظم النعم و این از بالاترین نعمتهای بگید خداست انل بلخی و قیله دیل دیگری گفته پس این معناش چی بود این شرح صدر اینجا چه معنایی پیدا کرد اینکه پیامبر خسته شده بود از امر رسالت خداوند با آیات او را بگید بهش این توان رو داد که تواند امر الهی رو دنبال و قیل معناه و علم نشره صد به ازهاب شواغل حالا جالبه میگه قیلی گفته که ما سینه تو رو وسعت ندادیم حوصله ی تو رو زیاد نکردیم به ازهاب شواغل با از بین بردن مشکولیات ها دیگران اگر نمیتونن به امره به قول دینیشون و به مسائلی که از خوب برسن هم به خاطر که بگید مشکلات دارن اون شواغل و مشکلاتی که دم پاس اون وزنهای های سنگین رو ما برداشتیم به ازهاب شواغل علتی تصد عن ادراک حق اون شواغلی که مانع میشه از ادراک حق مثل حب دنیا مثل به قول معروف خیلی چیزهای دیگری که جلو ادراک حق رو میگیره اون موانع رو ما بگو. برداشتو. به اذابه موانع. فهمیدید؟ پس شرح صدرش چی بوده؟ شرح صدر اینه که تو بگو، تعلقات تو از تعلقات تو رو که میتوانست تو رو زمین گیر کند، از یه جمله امیرالمومنین داره، دو تا کلمه است. این دو, دو تا کلمه که دو تا فیده. جاهز تو کتابش میگه اگر از امیر هیچی هیچ نیومده بود جز این یه نونه حدیث میشد بگه امیر المومنین امیر البیانه, امیر البیانه. سخن داره اون اینه یه حدیث کوتاه، اما انقدر این ایجاز قصر داره که میشه صد تا کتاب بنویسی میگه تخففو تل حقو. تخفف و, و همه مشکلات من و شما را از اول تا آخرین حل میکنه چی میگه؟ تخفف و سبب موانه و بارهای سنگینتون بزرسید تلحق و به هرچی میخواید میرسید ها؟ میگه هر کجا تو نمیتونی به هدفت برسی به دلیل این که بگو موانع هست بار سنگین رو شده ها هرچی بار سنگین بذار زمین بارها رو بذار یعنی قبل از این که فکر رسیدن بکنی فکر ملحق شدن بکنی تلحقو رو فکر کنی آقا ما همه همش فکر تلحقو رو میکنیم به هدف میکن. چرا قبول نمیشم چرا نماز شب نمیتونم بخونم چرا نمیتونم به قول معروف کار خیر کنم چرا نمیتونم خوب تحصیل کنم همه اینا چرا چرا چرا اون رسیدنه همه اینا یه مرحله قبل داره اگه اون مرحله قبل که به قول معروف مقدمات این حل بشه اون بعدی حله درست شده نه؟ میگه تخففو تلحقو حالا اینجا هم خدا همین کارو کرده برای پیغمبر تخففو کرده آه؟ تلحقو بار سنگین رو از روی دوشه او بگید برداشته نه اینکه که دیگه باری نبوده میگه باری که داشت کمر تو را بگه آزار میداد ما این بار رو سبو کش کردیم قال از سوئلن نبی ابن عباس گفته ان ابن عباس این البته و ان ابن عباس مالون قیل نیست اون قیل خودش نظرش رو نقل کرد این روایت از ابن عباس و ان ابن عباس قال سوئلن نبی صلی الله علیه و صلی اللہ علیه و صلی یا رسول الله این هش این شرح صدر رو این طرف مادی فکر میکرده متشد چی میگم یا یعنی نه از شرح حسد چی فهمیده؟ فکر کرده مثلا سینه من الان سی سانته میشه مثلا هشتات سانته مثلا این که چی میشه په میگه برگشته به رسول خدا گفته فقیله یا رسول الله این شرح حسد آخو سینه آدم هم په میشه آیا انشر رو؟ قال نم گفت بله قالو یا رسول الله و حل لذال که علامتون یعرفو ها آیا یه علامتی داره که ما بفهمیم سینمون بگو وسعت یافته قال نم اتجافی اندار الغرور، ول انابتو الى دار الخلود ول للموت قبل نزول موت. که البته باید نشه قبلن نزول الفوت تو این چیز خاص تو خیلی از خب میگه گفت چی؟ گفت از تجافی اندار غرور بلند شدن از دار غرور دنیا رو بگش کن تجافی یعنی کنده نشستی میخوای بلند شد ها؟ بکنی از دار غرور اصلا تو نماز دیدید موقعی که شما در رکعتی باشید که مام داره تشهد میگه شما چه جوری وای میسید اونو بهش میگن حالت تجافی یعنی حالتی که شما میخوایی برید میگه اونجوری کن نسبت به دنیا آ بکن از دنیا از تجافی اندارل غرور خیلی قشنگی ها ول انابه انابه یعنی چی انابه یونی با یعنی رجع ول انابه دار خلود آخه بعضی از دنیا میکنن اما به آخرت هم نمیرن دیدی؟ میشه صوفی میشه نمیدونم دیوانوار زندگی میکنن نه. اونها به قول مروش شیطون یه جوری دیگه گلشون زده اینها بدبختر از اونایی که شیطون با لذات دنیا گلشون زده باز اونایی که با لذات دنیا گلشون زده یه کیف و چیزی تو دنیا دارن یه غلطی میکنن اینکه خرص و دنیا و خوک و لآخره نهو لکفتار و, و نهزیمه هیچی ازن در مطله وله انا و اله دار الخلود هیچ برو به طرف دنیا بکن برو به طرف آخرت ولی انا و تو اله دار الخلود اعداد حالا نشانش چیه؟ نشانه این که تو از دنیا کندی و آخرتی شدی اینه وله اعداد و للموت قبل نزول الموت یعنی قبل نزول یعنی شما آماده باشی برای مردن قبل از اینکه بگید مرگ بیاد همون چیزی که تو خیلی از منابع ما هست موتو قبلا تموتو قبل از اینکه. یعنی موتو یعنی استعداد مرگ داشته باشید نه اینکه اگر ازرایل اومد یقت رو خواست بگیره با ازرایل داد و دعوارا بندازی و عدم رضایت و جنگ و چی که بابا من هنوز کار دارم چه خبر فلان غیره آه؟ نه وله اعدادو للموت قبل نزول الموت و من الاستفهام فیل آیته ات این تقریر استلاح نیست باید بگه چیه معناش؟ نفیه اصلا استفهام تقریری خودش یه استلاحه که اینجا جاش بگید نیست استفهام تقریری یه استلاحه که اینجا جاش نیست نشد یا شد منظور نفیه ای قد فعل نازالک با قد خودش گفته دیگه مثبت منفی در منفی مثبت قد فعل نازالک هم. و يدل علیه قوله فعلت علی و وزن انکوزرک اینا رو من توضیح دادم دیگه ای وهتتنا وزرک وزعنا آخه ببین وزع دو جور معنا داره یه وزع یعنی نهاد ها یه وزعه یعنی برداشت. اینجا با انه این و وضعنا انک وزرک آه؟ اینجا با انکه هست یعنی حتتنا. حتت یعنی چی؟ حتت یعنی پایین آورد. آه؟ میگن ان حتا منحد شد. حتتنا انكب بگو وزرک. پایین آوردیم از تو بارت رو. السی غذا زهرک یعنی اسقلهو. معنا کرده یعنی حمادو تو سنگین کرده بود حتی من یادتونه انقزه رو چی معنا کردم چراسه انقزه ينقزه اصطلاحه آها یعنی مثل آخه اصلش هم مال این چیزا بوده هودج هودج که میذاشتن رو شطور وقتی این زنها میشستن تو اون هودج این هودج ها اگر نو بوده و تازه این بنداشو بسته بودن و می چیزشو کبیده بودن این هودج ها صدا نداره لذا تو خیلی از شعراشون میگه خانومای ما سوار هودج هایی که ازش صدا شنیده نمیشه یعنی چی؟ یعنی نوه تراتمیزه درست سابیه پردش اینطوریه اونطوریه ولی بعضی ها حجف که میکنه میگه اونا زن... زناشون رو سوار کردن به حودش هایی که قرر قرر میکنه آه اینجوریه تق تق میکنه تق تق میکنه یعنی چی؟ یعنی حودش های دربداخون مثل مثلا این ماشین های پیکانه مثلا 20 سال 20 زبان که هم نجا اشتدا میده اینم میگه هم ان الازی زهره زهرک یعنی اسقلهو حتی سومه الهو نغیز نغیز همون صدا هست درست شد خش ای سوتون ان زجاج اینو که میگه زجاج میگه زجاج انسان نحوی و لغوی انس زجاج قال و هازا مثلون میگه نه که فکر کنی که واقعا اینا حقیقت نگیری دار الازی انقضی زهرک حقیقت نیست باره بار نیست درست شد یا نه این در واقع آمده امر معنوی را بگو تشبیح کرده به امره بگید حسی، درست شده نه؟ و سقل و سنگینی معنوی را بگو تشبیه کرده به سقل حسی و اینطور گفته این در واقع تمثیله مشخص شده نه؟ در واقع استعاره تمثیلی است یعنی آمده مسئولیت بالایی که بر دوش پیامبر بوده مسئول. دوش هم نگیم اصلا مسئولیت بالایی که بر عهده پیامبر بوده و پیامبر اون مسئولیت بالا و سخت رو باید به سرانجام میرسانده تشبیه کرده به کسی که بگید بار سنگینی را بر دوشش گذاشته و این بار سنگین رو باید به منزل به هدف به نقطه ای که معلوم است برساند مشخص شده نه لذا میگه صومعه نغیز ای صوتون انس سجو قال و هاذا مثل معنى هو انه لو كان حملا ببین اون استاره تمثیلی رو دردتون انه لو كان حملا این مسئولیت اگه بار میشد ها یعنی این مسئولیت که بار معنویه اگه بگو بار میشد لو كان حملا لصومع نغیز زهری ها اگه تبدیل به بار میشد حتما تق تق استخوان های کمر به زیرش شنیده میشه چرا اون اومده امر معنوی رو تبدیل کرده به امر بگید حسی نشود یا شود چون آدم با حسیات خیلی راحت تر میفهمه لسما گفتم این میشه استعاری چی چی تمثیلیه و قیل این المراد بهی تخفیف و عبا نبوه علتی تسقل و تسقل و از زهر منل قیام به امرها قیل اومده معنا کرده گفته منظور اینه که ثبوت کردیم عبا یعنی چی؟ سنگینی ها جمع ابه سنگینی های نبوهت رو سنگینی های مسئولیت نبوهت رو تخفیف دادیم سنگینی هایی که تسقل از زهر سنگیم میکنه کمر رو. ان من القيام به ها از این که بخواد انجامش بشه. منو کرده دیگه امینه. یعنی امیرشی میخواد بگه گوش کنی دوتا وقت دو دوتا دو فرقه. اون یکی میگه مسئولیت رو کم نکردیم. ها مسئولیت رو بگو کم نکردیم. بلکه توان تو رو بالا بردیم که اونو رسوندی. این یکی میگه بگو مسئولیت رو خیلی‌هاش رو از روی دوشت برداشتیم یعنی بارسان یه موقع یه بار سنگینی دو دوش منه یه کسی میاد زیرشو میگیره کمک میکنه خیلی مرسی میگم یه موقع یکی دیگه میاد که صاحب باره میگه حالا نمیخواد همه اینو ببری دو تا ساکشو از روش برمی داره متوجهید این دومیه میگه به تخفیف فئن المراده تخفیف تخفیف و اعباء النبوۃ و العلتی من القيام به. سهل الله ذلك علیه. خدا این مسئولیت رو انجام دادن بر پیغمبر آسون کرد، حتی تیسر له، تا اینکه بر پیغمبر ممکن شد. و من علیه بسالک بعد هم این تخفیف دادن و راست کردن رو بر پیغمبر بگید منت نهاد که ما این رو به تو لازم و انا عبی, عبی عبیدت و عبدالعزیز ابن یهیه این دوتا این رو نفشد و قیل معناهو قیلی گفته معناش اینه و ازلنا که هموم که از غلط کرد این یک بحث دیر. میگه اون بار سنگین بار مسئولیت پیامبر نبوده اون بار سنگین هموم هموم جمع همه هم با کم فرق داره دیدید یا نه می فرقش چیه میگن هم مقمت نباشه اینا مترادف نیستن عطف تفسیری نیست هم یعنی چی نه نه حزن نسبت به گذشته است حزن نسبت به گذشته است غم هم دلشوره نسبت به آینده است من نگران آینده هستم دلشوره دارم نسبت به آینده همچین محزونم تو خودم هستم که چی بشه میتونم از پس این بر بیام یا نه اینو میگن هم دلشوره کم نسبت مثلا امتحان دادم رد شدم و نشستم اینجوری میشه کم اما الان فردا باید امتحان بدم الان دل تو دلم نیست همینطوری نشستم میشه هم درست شما؟ لذا هم و غمم رو باید برعکس بگم باید بگن قم و هممت نباشه. غم نسبت به قبله، هم نسبت حالا با توجه این میتونید محنه گفته ازلنا انکه همومک. ها یعنی چی؟ یعنی دلشوره های تو داشتی که میتونی از عهده وظایف بر بیای یا نه. ما این دلشوره ها رو همه برطرف کردیم. دلت رو محکم کردیم. ها؟ دیدید مثل یک که نمیتونه امتحان بده هی hey, همچین وسواست داره دمشوره داره شما میره یه اتمینان قلب بهش میدید میره و همه رو مینیمیسه میگه ما این کاری کردیم با تو ازل که حمومه که علتی از غلط کرد اون حموم چی بوده؟ من ازل کفار که آیا این کفار آزار ازیتشون میذاره من این کار رو بکنم یا نه؟ باز هل حمومه بالهم باز بودن تمثیلی تشبیه کرده به کسی که بار سنگین داره ول عرب و تج همه میگه عرب معمولا تو کلماتش دلشوره و اینجور چیزها رو بار سنگین حساب میکنه میگه دلشوره مثل بار سنگینی بگو رو در من رو کمر من هست خب عن عبی مسلم اینو آقای عبی مسلم گفته و قیله قیلی گفته معناهو معناش اینه و اصمناک ان احتمال الوزر درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی ما به تو اسمت دادیم محسومت کردیم از اینکه تو بگو به طرف گناه بریم همین اسمت که بهت دادیم بار سنگینی از دوشتو برداشته شد بار سنگین چیه؟ این که تو بخواهی به خطا برویم اون وزر بار سنگین خطا و گناه بوده و ما تو رو از او بگو محسوم کرد معناه و عصم احتمال وزر فنن المقصود من الوز میگه زیرا مقصود از وز اینه انلا یکون علیه سقلون معنای این میره چی میخواد بگه گوش کنید گوش کنید میگه و وزعنا انک وزع یعنی بارو برداشت گذاشت هیچی دیگه رو کولش نیست میگه پس باید اون بار سنگینی که برداشته شده بار رسالت نباشه این نمیشه که اونو بردار کنار پس باید یه بار منفی باشه اون بار منفی اون گفتش قصه ها و دلشوره هاست این داره میگه گناهه درست شده نه؟ ولی واقعیت اینه که وزعنا وزرک، سنجینی اونو بار رو برداشتیم یعنی جوری که دیگه انگار به گوه بار رو دوشه نیست لذا فهندم علا اصره میگه فهندم مقصود من الوزع انلا یکون علیه سقلون فعضا اسمه. پس وقتی که معصوم بشه کان عبل ان انلا یکونه یعنی انلا یکونه سقلون وقتی معصوم میشه خیلی خیلی معلومه که دیگه سقلی وجود ندارن کاملا سقل از بین میره قال المرتضى سید مرتضی الله مقامه برادر سید رضی اعلی همون مرحوم سید مرتضی میگه قدس الله روحه میگه ایشون فرموده انما سميت از ذنوبه اوزارن میگه گناه و گناهان اوزار نامیده شده تو قران هم هست دیگه لاتز روازرتون لعنه ها تسقلو چرا گناهان رو گفتن؟ اوزار چون اینا سنگینی میکنن درست شد؟ ت... لعنه ها کاسبها و حاملها یا تسقلو بخوانید بهتره لعنه ها کاسبها و حاملها کاسب یعنی چی؟ اونی که گناه رو میکنه حامل یعنی چی؟ یعنی اونی که این گناه رو به دوشش گرفته اول کسب میکنه بعد حملش میکنه این گناه روش میمونه کاسبیش تو دنیاست، هست حاملیش در بگی آخرت میگیم این بار سنگینه برای اون کسی که کسب کند و حمل کند توسطل و کاسب و حامل هم فکلو شیئن از غلل انسانه و قمهو و کدهو جازن یو سماوز را میگه بنابراین پس گناه میشه وزر پس کل این از الانسان انسان هر چیزی که انسان رو پروپاشو ببنده انسان رو سنگین کنه و قمهو و انسان رو غمگین کنه و کدهو و انسان رو به زحمت بندازه کدهو یعنی او انسان رو به کد بندازه جازه هر چیز این طور جازه هنیوس هم ما وزران جایز کس بشو بذاری پس میشه به امر رسالت هم گفت چی وزر فلا یمتنع ان یکون الوزر ال انما اراده بهی قمه. پس بنابراین میگه امکان داره که وزر در این آیه اراد بهی قمه منظور بگید قم پیغمبر باشه ما کان علیه قومه من شرک قم پیغمبر باشه به با آنچه که بر اوست قومش از شرک یعنی پیغمبر یه قصه تو دلش داشته داشته قصه یک چیزهایی رو میخورده اون قصه چی بوده؟ که مردم دارن مشرکند این قصه پیامر رو داشته از بین میبورده میگه خدا میگه ما این قصه رو بر تو بگو آسان کرد. به ماکان علیه قوم و نشه و انهو و اصحابهو, اصحابهو بینهم مردم مشرکند پیغمبر و اصحابش بین اونها اینا استفاده؟ نمی اینها به اینها اختدا بگو این قصه میگه بر پیغمبر بوده و انهو و اصحابهو بینه مقهور و مستضعف. پیغمبر و اصحابش بین اونها هستند، ها مقهور و مستضعف مقهور و مستضعف یعنی چی؟ یعنی پیغمبر کاری از دستش پر یعنی قوم مشرکن و لجوج و مستضعف و اونها سوار کارن تو مکه اینطور بود دیگه پیغمبر ضعیف می میگه اون قصه که پیغمبر میگه چرا اینها این قرآن و این هدایت رو زیر بارش نمیرن این قصه میگه بر پیغمبر آسان شد عبارت یه مقداری چیز داره ها باید بشه انهو و اصحابهو بینهو مقهورون مستضعفون مچخص شد؟ یا از اصحابهو رو برداره بشه و انهو بینه هم مقهورون مستضف تو مکه چنین بود ما اعلالله کلمته پس زمانی که خدا به پیانبر بگید قدرت داد ها؟ سخن پیامبر جایگاه پیانبر کلمه او رو بالا برد یعنی از مکه یعنی همه غم و تو مکه بود وقتی آمد به مدینه بعد از بدر و اهد و غیره پیانبر بگید آه اینجا بار برداشته شد اون قصه برداشت دید دارن فوج فوج میان آه ازا جاها نصر الله و و رعای تن ناسیت خلون اون باز شد فلم ما اعلالله کلمته و شرح صدره و بسط او دست رو باز کرد او به هازالخطاب تذکیرن اون موقع این رو بهش خطاب کرده به این شکل حاطب خود تذکیرن به پیامبر خطاب کرده تذکیرن یعنی بهش تذکر داده یادت چه و قصه ای داشتی تو مکه چه حال و عوضایی داشتی ها چقدر ناراحت بودی که مردم ماشه اما الان ببین دسته دسته همینطور دارن وارد میشن به دین اسلام تذکیرن لهو داره تذکر میده به پیغمبر به مواقع نعمته به محل واقع شدن نعمت لیو یقابله بشه حالا چرا داره مننتشو به روخ پیغمبر میکشه چرا داره اینا رو به روخ پیغمبر میگه لیو قابل او بشکر تا پیغمبر شکرشو بگذاره مگه ندیدید ازا جا انصر الله والفتح و, و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجاً فسب به به حمد ربک واستغفر و یعنی اونجا جای شکره جای استغفاره جای غرور نیست ل او بشه و يعيده ما بعده من آیات میگه آیات بعدش هم اینو بگید تأیید میکنه که انما العسر يسرا فاظافه رفت کف نصب و الی رب کف رفع فئن اليسر بزالت الهموم اشبه میگه زیرا یسر با ازاله هموم شباهت دارد ولعسر بزالت شدائد والغموم اشبه ها میگه زیرا یسر با چی میسازه؟ یسر با اینکه ما غم و غصه رو برداشتیم با اون مناسبت داره عسر با چی میسازه؟ بگید با؟ بگید ازاله شدایت و قومو؟ ازاله؟ ها؟ بخونید ببینید درست میگه؟ عبارت یه مقداری عبارت مرحوم اشکال داره باید بعد چی بیاد اگه گفتی به جای ازاله به وجود ها یعنی دومی رو اینطوری کنید درست شد ول به وجود شدا عد ول قموم اشبه ها یسر با ازاله هموم سال مناسبت داره ها و اسرو بگی تو از اسرو اول میگفت بهتر بود بگی اسر با وجود شدائد و غموم می سازه ها که اینا بود یسر با ازاله این غموم و شدائد می سازه یعنی عبارت رو باید اینطور می نویس ول اسرو به وجود شدائد و غموم اشواه ول یسرو به ازالت الهموم و شدائدش با این عبارت مرمومه میگه این این نمال اصر یسران با این میسه که تو تو مکه تو اسر بودی وجود اونها اسر الان در بگو مدینه هستی با یسر ما تو رو از مکه به مدینه این یه مقداری ناسازگاری داره عبارت مرموم رزی درسته که هر فرف خوبی خوبیه بدی نیست اصلا حالا بگیم هموم و هموم و اینا شدایت بشه سختی ها و برداشتن و آسون شدنش بشه بگید یسر اینا حرف درست مکه بشه شرایط اصر مدینه بشه شرایط یسر اینا همه درست اما این سور سوریه بگید مکیه به ها هنوز اتفاق نیفتاده منت مال جایی که اتفاق میفته ها گرفتید یا نه؟ این یه مقداری ناسازگاره میگه چی فئن قیل ان سوره مکیه تن سوره مکیه نزلت قبل ان یعلل الله کلمه الاسلام نازل شده قبل از اینکه خدا جایگاه اسلام رو بالا ببره مدینه فلا وجه لقولکم آیه آسید این وجهی دلیلی برای حرف شما دوش نیست گرفتی چی میگه نه فلا وجه لقولکم قلنا میگه جواب میدیم ان سُبْحَانَهُ لَمَّا لما بشره به دِينَهُ يعلي دينه على میگه وقتی خدای تعالی به پیامبر بشارت داده که دین تو رو ما بر همه ادیان بگید بالاتر میبریم ها ليظهره على الدين كله بالاتر میبریم و يظهر ابو على و قول داده که پیامبر رو بر دشمنانش يظهره یعنی یغله ببو قالب کنه پیامبر که بذالک وازعنا الحسق لفن میگه همین حرف خدا بگید آه حرف خدا مثل حرف من که به الله نیست که به یکی بگم خیلی ابچین دلش قرص نشه خدا بگه دلش قرص میشه میگه همین باعث شد بار از دوشش بگید برداشت یعنی وعده‌ای که تو مکه بهش داد ها همین وعده کارو بگو درست میکنه نیاز به عمل به وعده نیست چون وعده خدا اینه بگو عمل خدا خلف وعده درش نیست بما کان یلحقه من عذا قومهی ها کمی سقلقنی رو که به واسطه آن چیزی بود که به پیغمبر میرسید از عذیت قومش همه رو برداشت. و مبدلن ها واضعا مبدلن و مبدلن اصراهوی یسرا سختی پیغمبر رو تبدیل کرد به آسایی فانه فَا او یسق او زیرا پیغمبر اطمینان دارد به آن وعد الله حق کن به اینکه وعده خدا حقه و یا جوز عیسی. خلا باید تمام شد. این هم فامیدی جواب شد. میگه و یا جوز عیسی نیکوند لفظ و این کان مازیان فل مرادو به هیلوستبار. میگه درسته که اینجا مازیه، ولی مازیه محقق القوهو باشه بگو. آه؟ یعنی مستقبل محقق القوهو در هرکه مازی. علم یجد که یتیمن و همچنین اون علم یجد که جای خود این علم نشره یعنی سنش رهو ولی چون یقینیه اینو مثل قال الله هازا یوم و ینف و صادقی نسته قال الله یعنی چی؟ یعنی سی اقول الله درست شد؟ و یجوزا ایزن ان یکون لفظو و اینکان کانم واضیم به بهی الاسطقبال که قولهی و نادا حالا قال الله مثال زدم یعنی سیابون اینم و نادا از خواب الجنه کی نادا قیامت بعد بگه سینادی و نادا از خواب الجنه تا از خواب النار یا و ناداو درست شب یعنی سینادون ناداو یا مال کل یقزی علینا رب بش. در قیامت جهنمی ها به فرشته خازن جهنم میگن و لحاظا نظائر و کسیره و برای این نظاهره بگید زیادی است و صلی اللہ علیه نمیگید خب معییت باشید این شما